سلام مجدد به همه دوستای خوبمون باز هم در کنار آقای قهرمانی عزیز هستیم و خیلی خوشحالیم از اینکه ایشون رو داریم برای اینکه اطلاعات خوبی رو در زمینه خوردار نیک به ما دارن ارائه میدن خب من قبل از هر چیزی یه سوال داشتم یا یک موضوع رو در واقع میخوام مطرح کنم با شما جناب آقای قهرمانی اونم این هستش که چیزی که من خودم آشنا شدم با فضای خامگی اولین بار این بود که خب این خامگی خیلی از بیماری ها رو شفا میده یا در حقیقت اون مدل هوشمندی بدن انسان باعث میشه که با خوراک خام و حرارت ندیده و پخته نشده و همینطور سالم بدون گوشت باعث میشه که بدن هوشمند خودش اون راه درمان خودش رو پیدا کنه منتا خب صحبت هایی هم هست و بیماره هم هستش که از این طریق درمان نشده میخواستم یک توضیح تکمیلی خوبی به ما و دوستان شنوده بدیم که کل این ماجرا به چه صورت هستش و کجاها خیلی خوب درمان اتفاق افتاده اونجایی که درمان اتفاق نیفتاده موضوع بیماری چی بوده و کلا یه اطلاعات تکمیلی و جامعه ای به ما در این زمینه بدیم بعض بله. سلام عرضو میکنم خدمت شما باششندانگان عزیز خدمتون عرض شود که بله خامگی آخاری اصلا یکی از ب مطرح شدنش در جامعه همینه که گفته میشه در بیماری مختلف، تأثیرات خیلی خوبی داشته و مثلا خیلی از بیماری‌ها به این با این روش درمان شدن و یعنی بچا با گیاهخواری عادی هم در همینه که خب گیاه‌خوری یک فلسفه و سبک زندگیه که بیشتر حال اخلاقیه و برای موهیزیست و همچنین برای سلامتی هم تأثیرات مثبت داره اما در خصوص خود بیماری‌ها و درمان بیماری‌ها خام گیاه‌خوری چیزی است که حالا ادعا میشه یا برات به این اسمش در رفته که تأثیرات خیلی مثبت داره خب این حرف اشتباه نیست یعنی این حرف کاملا هم درست چون اصلا فلسفه خام آخری همینه که با سازگار شدن با طبیعت و با پیروی از قوانین طبیعی کلن بیماری ها ریچکند بشه و اصلا بیماری به وجود نیاد چون خامگی آخران معتقدن که بیماری در اثر اشتباهات خود ما و عادات اشتباه خود ما هست که بیماری ایجاد میشه و نه یعنی بدن خودش هوشمند و خودش به اندازه کافی قدرت داره که خودش رو بازسازی کنه بدن و بیمار نشه. خب خیلی از بیماری‌ها که حاصل اسیدی شدن و آلوده بودن خونه مثل مثلا همین سردرد و حالا سرماخوردگی‌های مکرر که حالا حاصل اخلاط مختلف در بدن هست و خیلی از بیماری‌های عفونی که حالا تغذیه غلط در اونها خیلی نقش مهمی داره آخری روی بیماری مختلف تأثیرات خب برای درمانشون میتونه تأثیرات خوبی داشته باشه. البته بستیل به شرایط بیماری داره مثلا بیماری های افونی و بیماری هایی که مربوط به تغذیه نادرست میشه و مربوط به عادات عادات سبک زندگی نادرست اینا خیلی میتونه خب با تغییر تغذیه نتیجه خوبی بده اما مثلا یک سای بیماری ها بیماری های پیچیده تر مثلا مثل سرطان یا بیماری هایی که مزمن بودن که مثلا در طول بیستی سال ایجاد شده یا یک سری بیماری ژنتیکی مثلا مثلا یه سری های مفصلی مثلا مثلا زانوی پرانتزی به فرض که خود من بهش مبتلام خب این خامگی آخری در اینجا همچنان میتونه تاثیر مثبت داشته باشه چون سموم کمتری به بدن وارد میشه یه خیلی از سموم که با غذا داره وارد بدن ما میشه با غذاهای ناسالم دیگه در خامگی آخری اون سموم وارد نمیشه و این خودش یه امتیاز خیلی بزرگه واسه درمان بیماری واسه پیشگیری از بیماری این اولین گام و مهمترین گام در درمان بیماری همینه که سموم اول وارد بدن نشه که بعد بدن, بدن بتونه خودش رو بازسازی کنه و بهبودی احساس بشه اما یک بیماری که مثلا سنش هم بالا باشه بعد این سالهای سال انواع بیماری رو هم گرفته باشه و بدنش ضعیف شده باشه و دکتر انوار روش های درمانی رو هم تقیی کرده باشه و نتیجه نگرفته باشه خب دیگه در خامگی آخری اون موقع نمیشه خیلی تضمین داد با قاطعیت بگیم بله بیماری شما مثلا به اعتماع 90 درصد خوب بشین سرطان بدخیمی که مثلا بهش مبتلا شدین این امید علکی دادن واقعا کار درست نیست و اصلا غیر اصولی هم هست اما گاهی هم یعنی ما شاهد این بودیم بیمارانی که خیلی وضعشون خراب بود و مثلا پزشکان جوابشون کرده بودن گفته بودن مثلا طرف دوز ما بیشتر زندگی نمونه حالا مثلا چند سال از چند سال با خام گیاخاری حالا هم اوضاع سلامتیشون بهتر شده همین که بعداخر عمرشون طولانی‌تر شده از چیزی که پیش تو بود اما در کل خام گیاخاری برای کسانی که بیمار هستن به نظر من یک ضرورته یعنی یک چیزی که حداقل باید امتحان بشه چون بالاخره نه اینجا از مواد اضافی خبریه نه خیلی چیز عجیب غریبیه بلکه همون غذایی که در طبیعت هست و با بدن ما سازگاره همونو قرار بخوریم چیز اضافی نداره یعنی بگیم عوارض جانبی خاصی شاملش میشه فقط بعضی بعضی از کسانی که بیمار هستن و بدنشون خیلی آلوده شده و میزان سمومی که در بدنشون تجمع پیدا کرده خیلی زیاده اینها گاهی بهتره که یواش یواش خامگیاخوری شروع کنن و نه یک دفعه چون گاهی ممکن این سمومی که از بدن یه دفعه میخواد دفعه بشه با خامگیاخوری خیلی دردهای زیادی برای اون ایجاد کنه که مثلا از حد تحملشون بیشتر باشه مثلا ایجاد خطر کنه که اینها رو حالا اگر افراد با یک شخصی که در خامگی آخری تجربه کافی داشته باشه یا با یک پزشکی که در خامگی آخری تجربه داشته باشه مشورت کنن مشاوره بگیرن معمولا میتونن با دقت بالایی مشخص کنن که هر شخصی چه شرایطی داره بدنش و چطور خامگی آخری رو شروع کنن درسته جراب قهرمانی بازم خیلی ممنون تشکر می کنم از اینکه اطلاعات خوبتون رو در اختیار ما و دوستان قرار میدین. و باز هم سپاسگزارم بابت اینکه در کنار ما هستین و این جمع ما رو غنی‌تر و پررنگتر و موثرتر می‌کنید. اگر موافق باشید ما یه میان برنامه میریم و برمیگردیم. بله در قصه قدیمی آماده است وقتی حضرت عیسی روی صلیب درگذشت بیدرنگ به دوزخ رفت تا گناهکاران را نجات دهد شیطان بسیار ناراحت شد و گفت دیگر در این دنیا کاری ندارم از حالا به بعد همه تبهکارها خلافکارها گناهکارها بی ایمانها همه خواست به بهشت بیاند عیسی به شیطان بیچاره نگاه کرد پندید و گفت ناراحت نباش تمام آنهایی که خودشان را بسیار با تقوا میدانند و تمام عمرشان کسانی را که به حرفهای من عمل نمی محکوم می کنند, به اینجا می آین. چند قرنی سعب کن بی بینی که دوزخ پرتر از همیشه می شود. برای افرادی هم که و بخواند پیشگیری کنن از بیماری ها خامگی آخاری صاده ترین راهه و هم، همونطور که گفته میشه پیشگیری بهتر از درمانه در حدوم پزشکی نوین همینو میگن دیگه در خامگی آخاری هم این صادقه یعنی در خامگی های هم چه بهتر که تا قبل از اینکه به بیماری های بدتری دشار نشدیم یا تا قبل از اینکه بیماری م شددت تا موقعی که جوون هستیم این رژیم حال در تااعت تا جایی که میتونیم شروع کنیم اگه میتونیم کامل اجراش کنیم اگر نه حالا 7۸ درصد حداقت خامگیاه های رو انجام بدیم در تغذیه روزانمون که از خیلی از بیماری ها به این شک پیشگیری کنیم و نکته دیگه هم که در درمان بیماری مهمه بحث مسئال ذهنیه. که باعثی ذهن هم آمادگی این رو داشته باشه یعنی مثلا در ابتدای ما به خامگیاخوری اصلا باور نداشته باشیم که خب به اشکالی هم نداره تا موقعی که تجربه نکردیم شک و تردید همه اینا طبیعیه منتها این که بخوایم همش مثلا بدون این که اصلا خامگیاخوری قبول نداشته باشیم زورکی انجامش بدیم به زور بخوایم اون رو انجام بدیم این میتونه خود تاثیرات ذهنی منفی در امر درمان اختلال ایجاد کنه و توصیه ای که برای این شرایط میشه اینه که اطلاعات خودشون رو افراد بالا ببرن که اصلا دانششون نسبت به خانگی آخری بیشتر بشه و بعد اون رو انجام بدن تجربه کنن اون موقع دیگه یواش یواش خودشون که نتیجه رو ببینن ذهنشون رو بهترین رو میپذیره که اصلا بیشتر به مدت طولانیتهای ادامه بدن یا حتی تا آخر عمرشون سبک زندگیشون رو عوض کنن و همین که در از نظر مد... کنترل استرس و مدیریت سایر جنبه های زندگی هم بایستی مهارتاشون رو زیاد کنن افراد خام یاخار به خصوص که میخوان تغییر مثبت در زندگیشون زیاد کنن که یه وقت اینطور نباشه که تغذیهشون سالم باشه اما بقیه چیزا ناسالم باشه که با دوباره نتیجه ناسالم بشه درسته بسیار عالی ما امکان این رو داریم که مثلا بیایم بررسی کنیم کیس بای کیس مثلا فردی که دیابت داره و ما یک برنامه خاص داشته باشیم برای فرد دیابتی این که خب از کجا شروع کنه کی شروع کنه با چه شرایطی شروع کنه و تا کجا پیش بره که بتونه اون انسولینی که تذریق میشه رو کنار بذاره و همینطور اون روندی که درمان اتفاق میافته بودین که برای بیماری های مختلف مورد به مورد مثلا برنامه تعیین بشه بله طبق نو و شدت بیماری یک ذریع توصیه های عمومی هست برای همه افراد و طبق شرط هر شخص باز اون برنامه یه تغییرات جزئی درش هست ویه خب در کل مثلا برای بیماری دیابت که خوشبختانه حالا دیابت جز بیماریایی که خامی آخاری خیلی معمولاً نتیجه, نتیجه مثبت میده. این در اکثر مواردی که مادیدیم خامی آخاری خیلی زود هم نتیجه میده برای ها و اینها مثلا در اول شروع تغذیه طبیعی یه سری پرهیزا دارن مثلا افراد دیابتی که قندشون خیلی بالاست یه مدتی بایستی از میوایی که خوشک هستن یا میوایی که خیلی شیرینن مثل خورما یه مدتی مثلا محدود کنن خیلی کمتر مصرف کنن یا پرهیز کنن بعدن که قند خونشون مد پایینتری یواش یواش رژیمشون تغییر بدن یا بیمارانی که مثلا چربی خون دارن کبد چرب دارن یه مدتی باید از مغزا و دانه پریز کنند تا زمانی که بدنشون متعادل بشه ولی همون رژیمی که توصیه شد به عنوان اینکه بیشتر بخش قضاها رو میوه ها تشکیل بدن یعنی قسمت اعظم خوراک ما رو میوه های شیرین تشکیل بده این یه توصیه عمومیه و مثلا سبزیجات و مغزها ها هم هر کدوم ده درصد کالری بدن باشه این توصیه کلی هست ولی خب باز برای هر بیمار ممکن نیم مقدار این درصدها کم و زیاد بشه مرسی جوای قهرمانی سپاسگزار و امیدوارم که هر جا هستین سلامت و پایدار باشید من از حضور شما مرخص میشم و هر منجا خداحافظی میکنم از حضور شما و دوستان عزیزمون متشکرم از شما براتون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم سپاسگزار خدानگهرتون باشه چکرن مرسی